اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده و و السلام والسلام على من لا نبیه بعد اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در درس گذاشتم ما شما بالای خصوصیات ویژگی های که مدینه داشت بالای بیان کردیم و فعلا در درس ما میخواهیم که نتیجه گیری هم در کنیم و آموخته ها و بندها و نصیحتایی که در این هفته بود بر مردم بیان کنیم و درس باز ما به قسم تقسیم میکنیم یک قسمت از که میشه مربوط برادران مجاهدینی که حزن سار از, از مهاجرین و از تمام نقاط کره زمین به دارالاسلام هجرت کردن و به دارالاسلام آمدند به بیان می‌کنیم و یک قسمت دیگه درس ما بالای کسایی میشه که خارج از دارالاسلام زندگی می‌کنند و در فکر ازی هستند که باش که چی میشه یک اصطلاح دارن باش که چی میشه یعنی چی معنا داره باش که چی میشه که اگر خلافت به حالت رسید که غنیمتا فریمان باشه و اصلاحات ان که اومدنی یعنی فراخی باشه و ارزانی باشه و از هر نگاه خلافت سایه تمكين بسیار زیاد وسیع داشته باشه و بعد از او باز ما و هجرت کنیم یک پیام به اونا است و هدف درس معامی است که یک نوا واذا و نصیحت و یک تذکر به تمام مسلمانان روی زمین در مورد خصیات دار الاسلام. تمام روایت را که در درس گذاشته و شما بیان کردیم بالای خصیات مدینه بالای سختی های مدینه معلوم میشه که دار راکه یا سرزمین راکه الله متعال به رسول الله سوالالله و علیه و سلام که رسولشان است و نبیشان است یعنی انتخاب کرده بودن یک سرزمینی بود که دارای خیلی مشکلات و سختی ها بود و از هر نوع سختی هایی که ما شما فکر میکنیم در آن موجود بود مثلا آب آشامیدنی کم بود که در وقتا ما شما گفتیم تا حالی که مثلا مریضی ها وجود داشت تب وجود داشت تا حالی که یک تعداد از بزرگان اصحاب کرام یعنی از جمله کسایی بودن که در کبار اصحاب بیان می شدن اونا اینمی سختی ها را بزرگ شمرده و به کفار رو بدعا کردن مثل که ما در روایت بیان کردیم که بلال رضی الله تعالی عنه برای شعبه و عدبه و امیه بن خلفه دعای بد کرده بودن و حتی ما شما سمیگنیم که ابو صدیق صدیقه رضی الله تعالی عنه به سخت مرزی مبتلا شده بود بلال رضی اللہ تعالی یعنی یک کسی بود که در سختی تاریخ داره در تحمل سختی و هر کس که سیرته کنه سیرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو را کنه شما بینیم که بلال در تحمل سختی تاریخ ساخته در اسلام کدام سختی هایی را که بالای ازی ابو جهل آوردند کدام سختی ها را که بالای ازی کفار قریش آوردن که به اندازه بلال رضی الله تعالی حالت می کردند و باز هم بلال احد احد می گفت یعنی اونقدر سختی ها بالای بلال رضی الله تعالی قدر فشار نیاورده بود کدام سختی که زندگی کردن در مدینه آورده بود شما سعی که یک شخصی که در صبر و در استقامت تحت لده کوب تحت سختی‌های بسیار شدیدی که بالایش هست متحمل میشه و صبر میکنه ولی سختی‌های مدینه سختی‌های شکنجه که در بالای بلال را الله عنه است و بلال را الله عنه به این وادار میکنه که به دعای بد دست بالا کنه و دعای بد میکنه یعنی ما این میگم که چقدر شما قیاس کنین که شدت شکنجه و سختی های قریش بالای بلال رضی الله در مکه میکردن و شدت سختی زندگی کردند در مدینه شما کنین که بلال رضی الله را, را متزلزل میسازد سختی های مدینه به سختی هست ولی باز هم صبر میکنن باز هم استقامت میکنن و باز هم درو حالت زندگی میکنن حالانکه ما و شما ذکر کردیم که بلال در تحمل سختی ها تاریخ دارد بالای سینش سنگ مانده شده دراز زده در شده و قسمت ای است که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلام است و اصحاب رسول و در مکه شکنجه میشه شه ولی رسول الله صلی الله اندازه قدرت نداره که یورا خلاص کنه سعی میکنه و دعا میکنه براشون و بعضی میگن که مدینه از این اندازه سختتر است و سختی های مدینه بن اندازه زیاد است که حتی به رسول الله صلی الله علیه و حراس پیدا میشه که نش اصحاب از مدینه نفرت پیدا کنند و دعا میکنه به مدینه و همو است که مدینه را رب العالمین دارالامن قرار میده مدینه یک قرار میده رب العالمین که است دجال نجات پیدا میکنه دجال بالای مدینه اومد نمیتونه در سرحداتش می والا داخلش اومد نمیتونه مدینه رب العالمین دار قرار میده که تاعون اینجا اومد نمیتونه رب العالمین مدینه را, را حرام قرار میده دارالامن برای مسلمانان قرار میده و مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله سلام میگه که برای ابراهیم ما قرار حرم قرار دادی برای ما مدینه را حرم قرار بده این رب العالمین او خلیل تو است و ما هم دوست و ولی و رسول تو هستیم به خاطر ازی دعا میکنه و با شما میایم درس عبرت خدا ازی میگیریم مجاهدین و انصار و و تمام کسایی که در بین خلافت اسلامی زندگی میکنن و تا تمام نقاط خلافت زندگی میکنن ما می ازی درس میگیریم با وجود می سختی ها با وجود می مشکلاتی که دامن اصحاب میشه باز هم با کسی اجازه نبوده که از مدینه را ترک کنه و از مدینه خارج شود و همه مردم به امر با استقامت شده بودن امر به صبر شده بودن به خاطر چی به خاطر از که پایه های نخستین دولت اسلامی بود و باید پایه های ژرف و عمیق گذاشته میشد و خلافت اسلامی از امون جا نشعت نشأت میگرفت و الا کسایی که مرتج شدن که ما در رواید گفتیم که قبایل عکل و عورینه یعنی کسی از بیرون نشده بود و بلکه مانند قبایل عکل و و او عربی که نظر رسول الله صلی الله علیه و بود که بر شان اجازه ولی عیناً یک تعدادشان مرتض شدن و ترک کردند دار اسلام غیر از او کسی اجازه نداش که از دار ترک کرد پس ما شما درس و عبرت شد که هر گونه سختی هر گونه مشکلاتی که می چی مشکلات اقتصادی باشه چی مشکلات سیاسی باشه چی مشکلات جنگی باشه چی بم باشه و چه قدر باران بمو و هر سختی که بالای ما شما ما شما با دار چی کنیم؟ از صبر و از استقامت و از تواکل کار بگیریم و چیزی که رسول الله علیه و اصحابش انجام دادم اون رو انجام بتیم و هیچگاه با فکر ما هم چنین یگه پینابین که ما شما دار الاسلام ترک کنیم و از دارالاسلام بیرون شویم. چرا بیرون چاوییم به خاطر از دار دارالاسلام به شما یک داری است که شما شما را از فتنه ها و از شر و از آشوب نجاب میده در روایت های متعدد ما شما میکنیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگن که خیر و عافیتی این که در حوالش است با آخرش فتنه های نصیب میشه که یک فتنه که واقع میشه مرد مؤمن میگه که اینی می است ولی فتنه, فتنه, فتنه, فتنه, فتنه با با و می که می ها فتنه دیگش فتنه آسانتر میکنه یعنی فتنه که دیروز بوده و فتنه که امروز می فتنه دیروز به امروز به ما شما آسانتر معلوم میشه و بعد از اون ما شما میبینیم که <تصفيق> میگن که اینی فتنه حالا کنندیه ماست ولی روز به روز سختی شده میره. اصحاب رسول میگن که چی امروز میگن بله مگم امروز چی کنیم رسول الله صلی الله علیه و شما با جماعت رسول منابه شه از خلفاء باید کنه با واتعهد دست و قلب تنابته و هرگاه نفر دیگر امادت نفر آخر اماده که همراه ازی نزاع کنه گردن آخریش بزنین بزنن. و دعاق رواياتش که اصحابی میگه هم که همه از خیر تما سوال میکردند ما از شر سوال کردیم و رسول الله میگفته بعض از ما شر آماده نیست ما پرسان که دو چ مسلمان یک جای شاین پس یک جای بودن با جماعت مسلمین و یک جای بودن با امام مسلمین این یک نوری است که شامل حال مسلمانان میشه و مسلمانان را از تمام مشکلات نجات میده پس بکار کار از من و شما که هر نوع سختی که بالای ما شما می استقامت کنیم و صبر کنیم و توکل بر رب کنیم و از اصلاح و ذات البینی با کار بگیریم معلفت القلوب رو در بین خود با ایجاد بگریم و دار الاسلام محکم بسازیم و دار الاسلام با بالای رعیت محکم میشه و هیچ گاه به اگر رعیت اجازه نیست که دار الاسلام ترک کنه به اساس مشکلاتی که در دا داخل دار الاسلام بوده باشه قسمت دوم دو ماه تذکره میکنیم به مسلمانان که بیرون از دار الاسلام زندگی میکنن و اکثر از اینو کسایی هستن که واقعا درک میکنن که خلافت سنامی خلافت برحق حق است خلافت علامنهاج النبوه است اونم خلافت رسول الامین و الله الذين منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض رب العالمين کسایی که ایمان و صالح انجام دادن یاره به خلافت میتنه روی زمین این خلافت رسول الالعالمین به شما خلافت رسول الله حدیث میگه سم خلافه منهاج النبوه که خلافت علامنهاج من این همی طایفه هاقس و ایوان می فهمن که رسولان سلام در حدیث سریف میگه که لا تزال من طائفه من الامه الزواهرين على الحق حماشي اك طائفه ازمت به حق ظاهر میشن اینی طائفه ای است که بر حق واقع شده اینی طائفه منصور است این این فرقه ناجیه است چی باعث میشه که اینا هجرت نکنن چی باعث میشه که اینا از دارالکفر بذار اسنام ن بیان اینی مشکلات است که استقامت در مقابل سختی ها استقامت در مقابل مشکلات استقامت در مقابل ازی که ما تحت باران و مرمی قرار داریم امریکا بالای ما با تمام احزابش و مرتین و منافقینی که جیج شده، خلافت سنایی زندگی سخت است. عوضای اقتصادی مشکل است. عوضای سیاسی مشکل است. عوضای اجتماعی مشکل است. دین جز زندگی تجمع لگرانی است. زندگی است که در عقلیت ها و با بسیار مشکلات و سختی ها مواجهین زندگی میکنن زندگی است که با مریضیشان رسیدگی نمیشه. با زندگی است که با زخمیشان رسیدگی نمیشه. زندگی است که امور اقتصادیشون قسمی است که بسیار با مشکلات زندگی اقتصادی خودتیم میکنیم و رب العالمین اینجا وعده کرده به یا که شما تقو وقا اختیار کنه رب العالمین میگه ما تمام مشکلات شما رو براتون حل میکنه و با شما رزق از جای میرسانم که شما یعنی باورتان و همه ی یا الله یجعل له و ویرزق من حيث لا يحتسب شما تقوا اختیار کنه میگه من تمام راه ها رو را به شما نشون میدم و از جای شما رز میتم از جایی که شما نمی نمیاد پس اینا کسایی که امروز اومدن یک شبره وارد میگنن بعضی کسایی که بر شنبه وارد میگنن که ای جای است که تمام موحدین جمع میگنن و یک بار موحدین اینجا از بین میبرن یک شبه شب دیگه یا وارد میکنن که این یک حالی است که با امریکا جنگ نمیشه سختی و دشواری و مشکلات است ما شما باید بشینیم تا وقتی که آماده ای کنیم شوهای است که شما را از نور و از خیر باز میدارن ما شما را دعوت میکنیم هدف ما از در سامی بود به شما بیان کنیم که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در یک مکان یک جای داروستان و بنا نهادک از نگاه سیحیج درست نیست اکثر مردم عی که از شده سختی ها میشن پس بکار بوده که شما بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی اعتراض کریں چرا رسول اللہ در ایک مکانی کہ پورا سختی واسمی دار الاسلام بنیاد میگذاره و هدفش از بنیاد گذاشتن دار الاسلام است پس ما شما باید ببینیم که کدام کار را کسب کردیم ما مت کریں۔ اصحاب با مت سختیو ہجرت کردن شما با مت سختی ہجرت کنید اصحاب با مت سختی در دار الاسلام و مشکلات قبول کردن شما مشکلات قبول کنید و ہجرت کنه و با ہجرت در دار اسلام محکم کنه با استقامت و صبر در مقابل سختی ها ایمانتان برای بلال العالمین نشان بده و خودت مومن ثابت کنین و الله العظیم با آرام زندگی کردن ها و با این ها و با لباس های رنگارنگ رنگ پوشیدن و با زندگی کردن تحت تاغوت ما شما نمیدونید تو ایمان داشته باشیم ما شما هیچ وقت مستضعف قرار ندنیم تا از لازم مستضعفین نباشید چرا زمین عرب العالمین بسیار وسیع است و دار الهجرت فعلا وجود داره شما سختی ها را بهانه نکرده خدا از کلانترین نعمت محروم نکنین که خلافت است. شما سختی ها را بونان نکرده، خدا از کلام تنین نعمتی که جنت است، از خدا محروم نکنین. پس ما با شما تسلیه کردیم که سختی های را که اصحاب کرام تحمل کردند، ما و شما از که سختی ها را تحمل کنیم و هجرت کنیم و دارال اسلام کرد. جای دار سختی هاست. حدیث سیی است که میگه که عالیه سجن المؤمن و جنت الكافر. یعنی دنیا زندان برای مؤمن است و جنت برای کافر است. مسیحی خاطر ما و شما باید سختی های دنیا برای ما و شما سر ما نشه که ما از امور خود خدا دور مانیم از رحمت و از نور رب العالمین خدا دور کنیم و از خلافت خدا دور کنیم به خاطر از اینکه ما سختی ها را بهانه می کنیم هدف ما و تمام کسایی هستند که واقعا خلافت در کردن خلافت می فهمند خلافت بر حق است و به خاطر از که زندگی شون یک زندگی آرام و پرتجمل نیست به خاطر هجرت نمی کنند شما می گویند که امو بزرگای ما و شما کسایی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه کسایی که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دنیا بشارت داده اونو کسایی سختیارا تیر کردن صدیق اکبر رسول الله صلی الله علیه و آله در روایت میگه که اگر بعد از الله خلیل گرفته میشد من ابوبکر صدیق خلیل میگرم و دیگه کس پیش سوال میگن در زندگی کیلی بسیار دوزخ میگه که ابوبکر صدیق و دیگه کیلی دوزاری باز میگه که دخترش عایشه رضی الله عنها یعنی کسایی که الله رب العالمین از وا راضی است کسایی که الله متعال از وا رضایت خاطر قرآن کریم رسماً روان کرده و پیش ما سوره توبه و سابقون اولین من المهاجرین والانصار در سوره فتح آیات است اینی کسا سختی را تیر کردن و شما از وام که برتری دعوه دارین بسیار ظلم است و بسیار زیاد یعنی زیادی است که شما با خود میگنین تمام علمایی که میگن که شبه وارد میگن که خلاف سایه تمکین نداره و ساهی تمکین خلافتی رو میگن که کالا و های سفید باشه عطر داشته باشن موتر بیا با به مدرسه و برشن مدرسه درس بتن و پس بین دخانه این سایه تمکین میگن شما و ساهی تمکینم دیدن و حرم دیدن یک بار به با زندگی واقعی اس زندگی کنید زندگی ریکنید حساب کرده و یه خاطر ما به شما این مسئله رو تذکر کردیم که نظر شما این مسئله باید باشه که سختی ها مانع هجرتتون نشه و شما به سختی ها زنی کردن یاد بگیرین در جایی که وبا وجود داره مرض همگانی در اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله هجرت میکنه جایی که با واشمدنی وجود نداره رسول الله صلی الله علیه و آله هجرت میکنه جایی که محیط زیستش قابل زندگی نداره اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله هجرت میکنه جایی که اکثر اصحاب تپ میگیره اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله هجرت میکنه مقاومت میکنه استقامت میکنه شما باید به متسختی هایی که باران است توپ است تانک هست، هست، سختی است ولی شما باید چی کنین کنه مدامت یک جایی ما شما باید زندگی کنید و این مسئله به این باقی نمون که فقط مدینه در زمان بوده باشد بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مدینه به مو حالت مانده بود و روایت است که از ابو سعید الخدری در بارزی یکی از اصحابیا ها مشوره مشوره میکنه میگه که در مدینه حالات سخت آمده بود از نگاه عذیت اقتصادی قسمی بود که نرخ قیمت شده بود برای سید خدری میگه که های مدینه بسیار زیاد قیمت است، عیال ما بسیار زیاد است. من میخوایم که از مدینه هجرت کنم یعنی بیرون شوم کج کنم یعنی به این مانا که ما به سختی های مدینه صبر کردن نمی دانم ایشان فرمود بیچاره شوی من تو را برای کوچ کردن از مدینه اجازه نمی دهم زیرا من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمودن هیچ کسی در سختی های مدینه صبر نمی کند تا وقتی که فوت شود مگر من برای وی روز قیامت شاهد و شفی نشم ولی به شرطی که مسلمان فوت کرده باشد مسلمان بوده باشه. یعنی صحابی پیش از ابو می برش می‌که ما عالات مدنی سخت است مدا عالات سخت صبر کردن نمیتونم ما می‌خوایم که از اینجا کوچکنم عیال مزیاد است نرخا بلند رفته. ابو سیدی برش می‌که به چهارش هی. ما تورو هیچ وقت جذاب نمی‌تیم چرا؟ با خطر دیکر رسول صلی الله علیه و سلم گفته که هیچ کس نیست که در سختی های مدنی صبر کنه و فوت کنه مگم ما در روز قیامت به او شاهد نباشم و با او شفاعت کنند نباشم. مگر با شرط که مسلمان فوت کرده باشه عین شکل انشالله که رب العالمین کسایی که در دا دار الاسلام استقامت میکنن و سختی های دار الاسلام قبول میکنن رب العالمین انشالله که اینا را مورد عفو قرار میته انشالله که رسول رسول از کسایی از یا شفاعت میکنن آخرت و از عذاب جهنم نجات پیدا میکنن و خلاصه درس سمومی بود که ما روایتای درس دوم گرفته یک نصیحت به کسای در دارالسلام زندگی میکنه کردیم و کسایی که بیرون از دارالسلام مثلا به اون نصیحت کردیم و هم از رو به دعوت کردیم و یک بار دیگه عزت از مسلمان مسلمانا و تمکینی که مسلمانا داشتن بار دیگر بوجود بیا با اسم الله تعالی بارک الله لنا و لكم في العظیم و نفعنا و اياكم بالايات و ذکر الحکیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله